هفت برادر شکارچی و یک خواهر. داستان نقل شده از عوض قربانی از کلاله است لازم به ذکره که عبارت قاورقا که در این داستان می یعنی گندم تفت داده یکی بود یکی نبود در روزگاران قدیم مردی بود که هفتو پسر داشت اونا شکارچی های ماهری بودند برادرها از اینکه خواهری نداشتن قصهدار بودن تا اینکه مادرشون باردار شد. هفته ها گذشت و ماه ها گذشت. روزی پسرا به مادرشون گفتن چی میشد اگه خدای مهربون به ما یه خواهر میداد هفتها برادریم خوب میشد اگه یه خواهر مهربون و دلسوزم داشتیم اون وقت اون توی قصه ها و شادیامون کنار ما بود اگر این بار خواهری برامون نیاری ما سر به بیابون میذاریم و از اینجا برای همیشه میریم مادر از حرف پسرا خیلی ناراحت شد دستاش رو رو به آسمون بلند کرد و گفت ای خدای مهربون به دختری عطا کن تا پسرام از خونه و کاشونشون آواره نشن. روزا و هفته ها و ماه ها گذشت زن در انتظار به دنیا آمدن فرزندش بود تا اینکه یه روز پسراش قصد شکار کردند. هنگام رفتن پسر بزرگ زین اصفی به دست مادرش داد و گفت مادر اگه برادر دیگهی برامون آوردی این زین رو از دروازه شهر آویزون کن کوچکترین پسر عروسکی به مادر داد و گفت اگه هم برامون آوردی این عروسک را از دروازه شهر آویزون کن تا ما با خبر بشیم. پسرا یکی یکی پیشونی مادرشون رو بوسیدن و اون به پدر و پدرشون رو به خدا سپردن و خداحافظی کردن و افتادند پدر و مادر با نگرانی از پس اونا چشم دوختن. نمیتونستن از پسراشون دل بکنن تا اینکه که اونا توی قبار راه ناپدید شدند روزها و هفته ها و ماه ها گذشت تا شبی زن نوزادی دختر به دنیا آورد که توی زیبایی مثل ماه بود زن و مرد خدا را شکر کردند. زن به شوهرش گفت برو این عروسک را از دروازه شهر آویزون کن تا وقتی پسران برمیگردند بفهمند بفهمن صاحب خواهری شدند مرد با خوشحالی رفت و عروسک را از بالای بلندترین برج دروازه شهر آویزون کرد و به خونه برگشت. تو همسایگی اونا پیرزن بد جنس و حسودی زندگی میکرد. پیرزن که از جریان زین و عروسک با خبر شده بود، رفت و عروسک را برداشت و جای اون زین اسب را به برج آویزون کرد. چند روز بعد سر زور پس از شکار برگشتند، همین که به دروازه شهر رسیدند چشمشون به زین اسب افتاد. با ناراحتی پشت به شهر کردن و اسباشون رو به سمت بیابون بردند و خسته و کوفته به یه دره رسیدند. برادر بزرگتر گفت بهتره همینجا بمونیم. روزا به نوبت یه نفر از ما برای نظافت و غذا پختن اینجا میمونه و بقیه‌ام برای شکار میریم. همینجا ساکن میشیم. زن و مرد اسم دخترشون رو آخ پامیق گذاشتن و منتظر بودن پسراشون هرچی زودتر از شکار برگردن. اما هرچقدر انتظار کشیدن خبری از پسرا نشد. سالها گذشت و خبری از پسرا نرسید. از قصه اونا موهای مرد و زن سفید شد و چینای امیقی روی پیشونیشون افتاد. پدر و مادر، دیگه توان این رو نداشتن که خودشون برای پیدا کردن پسرشون برن و آخ هم که بی خبر از ماجرای برادراش بود روز به روز بزرگ و بزرگتر می شود. بعد از گذشت چند سال آخ به نوجوانی رسید. یه روز همسایشون که مکتبدار بود به خونه اونا اومد و به مادر آخ گفت دیگه وقتی این رسیده که آقپامیق رو به مکتب بفرستی، مادر آقپامیق گفت: برو خودت بهش بگو، اگه خودش راضی باشه من حرفی ندارم. پا میغ علاقه علاقمند به مکتب شد، از فردای اون روز به مکتب رفت. روزی از روزا، توی مکتب خونه یکی از دخترها که از ماجرای برادرای آقپامیق خبر داشت، خواست اون رو فاش کنه. رو به دخترا کرد و گفت دخترا خوب به حرفم گوش کنید هر کی داداش داره بره بالای اتاق و هر کس هم برادر نداره بره پایین در بشینه بعضی از دخترا رفتن بالای اتاق نشستن و بعضیشون هم رفتن پایین آخ هم رفت جلوی در نشست پیرزنی که اونجا حضور داشت رو به آخ پامیق کرد و گفت دخترم آخ پامیخ. تو چرا جلی در نشستی؟ پاشو برو بالای اتاق آخ پامیق گفت نه مادر من که برادری ندارم تا بالای اتاق بشینم جای من همینجا جلوی دره پیرزن سرش رو تکون داد و گفت نه دخترم برو بالای اتاق بشین اگه دیگران یکی دو تا داداش دارن تو هفت تا داری آخ پامیق با تعجب گفت شوخی نکن مادر من اصلا برادری ندارم اگه داشتم که پدر و مادرم حتما به من میگفتن. پیرزن مهربون گفت دخترم پدر و مادرت که دیگه نمیتونن دنبال اونا برن. به خاطر همینم میترسن که این خبر رو به تو بدن و تو هم بذاری بری. برادرات تو دره کوه بلندی زندگی میکنن. مادرت به راحتی از برادرات به تو نمیگه. من به تو یاد میدم این راز رو چطور از زبون مامانت بیرون بکشی؟ بعد از اینکه از مکتب رفتی برو پیش مادرتو ازش بخوا برات قاورغا درست کنه. وقتی قاورغا آماده شد اون حتما برات اونو میریزه توی ظرف. قبولش نکن. بگو باید با دستای خودت به من قاورغا بدی. وقتی که قاورغای پخته رو بیرون میاره دستش رو بگیر و محکم فشار بده. و همون وقت ماجرای برادرات رو بپرس. اون نمیتونه در برابر گرمای قاورقا طاقت بیاره. در نتیجه ماجرا رو بهت میگه. در غیر این صورت هیچ وقت این راز فاش نمیشه. آخ دوون دوون از مکتب خونه بخونه رفت و به مامانش گفت مادر جون سرم خیلی درد میکنه. گروس هستم. مادرش پرسید دخترم چی میخوای بخوری؟ آخ میخ گفت برام یکم قاورغا درست کن مکتبدار گفت که اگر قاورغا بخورم سرم زود خوب میشه مادرش فوری دست بکار شد دیگه سیاه رو روی اجاق گذاشت و بعد از اون که گرم گرم شد بقداری گندم رو توی اون ریخت وقتی گندم خوب سرخ شد آخ پامیت به مامانش گفت مادر جون قاورغا رو گرم به من بده مادرش قاورغا رو با قاشق از دیگ برداشت و توی ظرف ریخت و طرف آخپامیق بود. آخپامیق گفت نه نه مادر جون میخوام با دستای خودت بهم بدی. مادر بیچاره که نمیخواست دخترش رو ناراحت کنه قابرگای سرخ شده رو مشتی برداشت رو به سمت آخپامیق دراز کرد. تو همون لحظه آخپامیق با دو تا دستش به مشت مادرش چسبید و اونو فشار داد. فریاد مادرش درآمد ای وای دستم سوخت ول کن آخ هم میخوری گفت مادر زود بگو برادر دارم یا نه مادرش که نتونست گرمای رو تحمل کنه با عجله گفت داری آره داری اما اونا قبل اینکه تو به دنیا بیای اینجا رفتن الان کجا هستن درست نمیدونم اما میگن پای یه کوهی بلند هستن آخ پامیق دست مادرش رو رها کرد و گفت من میخوام برم پیششون مادرش گفت نه دخترم تو نمیتونی پیداشون کنی ولی آخ پامیق پاتوی توی یک کفش کرد که باید بره پیش برادراش وقتی مادر اصرار زیاد آخ پامیق رو دید بناچار قبول کرد و گفت پس من برات یه نون کوچیک میپزم تو همون قرص نون رو قل بده و دنبالش برو هر جا وایساد؟ برادرات اونجا هستند. مادر قرص نونی پخت و به دست آغپام میق داد. آخ پامیق قرص کچیک نون رو قل داد و را افتاد. آخپامیق گربه کوچیکو و ملوسی داشت. گربه که دید داره میره دنبالش را افتاد. نون قل میخورد و میرفت و آخ پامیق و گربه هم دنبال قرص نون میرفتند. رفتند تا خسته و کفته پایی درختی نشستند. آق پامیغ قرص نون رو گوشه گذاشت خودشم به درخت تکیه داد و به استراحت پرداخت آق پاممیغ اونقدر خسته بود که زود به خواب رفت هم چون خسته و گرسنه بود وقتی دید آقپاممیخ خوابیده رفت و یک گازی از اون نون زد آق پامیغ که از خواب بلند شد رفت سراغ قرص نون و خواست اون رو قل بده ولی قرص نون غل نخورد آخ دید گوشه از قرص نون خورده شده زد زیر گریه و از گریه اون گربه هم گریهش گرفت و هر دو زار زار گریه کردند. بعد از مدتی یه دفعه فکر به خاطر آخ رسید با مقداری خاک گل درست کرد و گوشه نون چسبند و دوباره اون رو قل داد و قرص نون مثل اولش قل خورد و را افتاد اونا رفتن و رفتن تا به درهی رسیدند. قرص نون یکی دو بار دور خودش چرخید و روی زمین افتاد. تو نزدیکی ها یه قار بزرگ بود که برادراش اونجا زندگی می وارد قار شدن. کسی توی قار نبود. لباس های کسیف روی هم تلنبار شده بود. ظرف های هم کسیف بود و گوشه دیگه قار تکه های گوشت آویزون بود آق پامیق ابتدا قار رو تمیز کرد لباسار رو شد زرف رو تمیز کرد و سراغ گوشت رفت و غذای خوشمزه پخت و منتظر برگشتن برادراش شد بعد از مدتی صدای سوم اسب رو شنید از ترس رفت یه گوشه قایم شد برادرا که وارد قار شدن از وضع مرتب قار تعجب کردند. لباس های کثیف را درآوردن و لباس های تمیز رو پوشیدن و تا میتونستن از غذای خوشمزه خوردن و از بس که خسته بودن فوری به خواب رفتن. فردا بازم به شکار رفتن. آق پام میغ لباس های کثیف و شست، ظرف رو تمیز کرد و بعد از اینکه غذا را آماده کرد باز گوشه قایم شد. وقتی برادر رو برگشتن دیدن و از قار از دیروزم بهتر شده. نمی چه کسی این کار انجام داده. با هم مشورت کردند و سرانجام برادر بزرگتر گفت فردا باید یکی از ماها اینجا بمونه و سر از این راز در بیاره. روز اول قرعه به برادر بزرگتر افتاد. اون مدتی دوروبر رو نگاه کرد. اما هر چقدر انتظار کشید خبری نشد. پس خوابید. آق پامیق که دید برادر بزرگتر به خواب رفته از مخویگاهش بیرون اومد و لباسا و زرفا رو شست و غذا پخت و قایم شد برادر رو که شکار برگشتند دیدن وضع خونه بازم مرتبه تعجب کردن و از برادر بزرگتر پرسیدند کی بود کی این کارا را انجام داد برادر بزرگتر گفت منم نمیدونم یکم نشستم بعد خوابم برد فردای اون روز برادر دوم تو خونه موند. اونم خواب موند و آق پامیق بازم کارا رو کرد و قایم شد. روزای بعد برادر سوم، چهارم، پنجم و ششم تو خونه موندند ولی هیچ کدوم نتونستن بفهمن این کارا رو کی انجام داده. نوبت به برادر هفتم رسید. اون برای اینکه خوابش نبره انگشت کوچیکش رو برید و روش نمک باشید. از درد زخم و سوز نمک خواب به چشمش نیمد گوشهی کمین کرد و منتظر موند ناگهان یه دختر از گوشه قار بیرون اومد لباسها رو شست و شروع کرد به انجام دادن کاره خونه وقتی برادر کوچیک آخپام میقا دید تعجب کرد ناگهان از مخفیگاهش بیرون پرید و فریاد زد آهای دیوزاده یا پریزاده ای بگو کی هستید آق پام میخ که قافلگیر شده بود جا خورد و ترسید. اون دیگه فرصتی برای پنهون شدن نداشت. پس گفت نه دیوزاده هم نه پریزاده من خواهر شما هستم. بعد آق پامیغ تمام ماجرا رو از اول تا آخر برای برادرش تعریف کرد. برادر کوچیک از اینکه خداوند به اونا خواهری داده بسیار خوشحال شد و تا رسیدن برادرش لحظه شماری کرد. وقتی برادرش شکار برگشتن به پیشوازشون اومد و با عجل ماجرا رو براشون گفت. اونا هم خیلی خوشحال شدن. چند روزی از این ماجرا گذشت. یه روز آخپامیق مشغول جارو کردن اتاق بود که یه دونه کیشمیش پیدا کرد. گربهش را صدا کرد اما از گربه خبری نشد آخر سر کشمش رو به دهان خودش گذاشت و خورد مدتی گذشت گربه از گوشهی پیدا شد پرسید چرا منو صدا میزدی؟ زدی؟ آخبام گفت یه دونه کشمش پیدا کرده بودم میخواستم اون رو به تو بدم ولی به موقع نایمدی گربه گفت پس چه کارش کردی؟ آخبام میک گفت وقتی دیدم نایمدی خوردمش گربه با ناراحتی گفت کشمش رو خوردی؟ خیلی خوب حالا منم میرم آتیش اجاقت رو خاموش میکنم. آخ پامیق دست پاچه شد و گفت اگه آتیش رو خاموش کنی چطوری غذا بپزم؟ اون وقت برادرم گرسنه نمیمونن. این کار نکن. اگه یه بار دیگه چیزی پیدا کنم حتما میدمش به تو. گربه گفت باشه؟ ولی بله اگه دفعه دیگه چیزی پیدا کنی و بخوری آتیش اجاقت رو خاموش میکنم. چند روز بعد آخ موقع جارو کردن اتاق یه سنجت پیدا کرد و گربهش رو صدا کرد تا سنجت رو به اون بده. ولی هر چقدر صدا کرد خبری از گربه نشد. سرانجام سنجت رو هم خودش خورد. کمی بعد گربه پیش آخ اومد و گفت چرا منو صدا زدی؟ آخ گفت یه سنجت پیدا کرده بودم خواستم اون رو به تو بدم تا بخوری. گربه گفت پس سنجده من کو؟ آخ پامیق گفت هرچقدر صدات کردم نیمدی. آخر سر خودم خوردمش. گربه گفت این دفعه آتیش اجاقت رو خاموش میکنم. بعد رفت سراغ اجاق با آتیش رو خاموش کرد. آخ پامیق خیلی ناراحت شد. اون هرچقدر تلاش کرد با سنگ چخماخ دوباره آتیش رو درست کنه نشد. سرانجام رفت بالای کوه و نگاهی به اطراف انداخت تا آتیش پیدا کنه دید توی دوردست از دودکش خونهی داره دود میاد بیرون از بلندی اومد پایین و به طرف خونه را افتاد وقتی به اونجا رسید داخل شد و سلام کرد دید دیو بزرگی وسط اتاق نشسته آق پامیق از ترس عقب عقب رفت و تا خواست از اتاق در بیاد بیرون دیو قرشی کرد و گفت اگه بدون سلام وارد می شدی می بعد از آق پامیق پرسید ای آدمی زاد از کجا اومدی چی میخوای خوایی؟ می آق گفت از راه دوری اومدم می آتیش ببرم دیو گفت ظرف آوردی؟ دختر گفت فراموش کردم ظرف بیارم دیو گفت پس دامنت رو بگیر دیو ابتدا تکه از گدازه رو توی دامن آقپامبیغ انداخت سپس روش کمی خاکستر ریخت و روی خاکستر هم دوباره گدازه ای از آتیش گذاشت آقپامبیغ دامنش رو گرفت و رفت طرف خونشون گدازه های زیر خاکستر دامن اون رو سوراخ کرد و تا برسه به خونه از اون ردی به جا گذاشت و آخبامیق بیخبر خبر از همه جا رفت و به غار رسید. اجاق رو روشن کرد و غذا پخت. غروب که شد، تا برادر از شکار برگشتند، خوردن و خوابیدند و صبح زود دوباره پی شکار رفتند. روز بعد دیو رد خاکستر رو گرفت و را افتاد تا به غار رسید. آخ پامیق که دید دیو داره میاد در قار رو محکم بست. چفتش رو انداخت و نشست. دیو با مشت به در کوبید و گفت زود باش در رو باز کن. بدن آخ پامیق از ترس به لرزه افتاده بود. دیو با عصبانیت قرشی کرد و بلندتر فریاد کشید و گفت زود در و باز کن یا انگشتت رو از سوراخ در بیار بیرون. آق پامیغ که چاره نداشت مجبور شد انگشتش رو از سوراخ در بیرون ببره. دیو انگشتش رو گرفت و سوزنی به اون زد. بعد شروع کرد به مکیدن خونه آخ دیو بعد از این که از خونه آخ پامیق سیر شد گفت مبادا در این باره چیزی به برادرات بگی اگه بگی تو رو میخورم. اینو گفت و از اونجا دور شد. آخ از ترس چیزی به برادراش نگفت. بعد از اون روز دیو هر روز میرفت اونجا و آخ پامیق انگشتش رو از سوراخه در بیرون می آورد و دیو خونش رو می و می رفت. پامیق روز به روز لاغرتر و رنگ پریده تر می شد. برادرش از اون می پرسیدن پامیق چرا روز به روز داری لاغرتر میشی؟ مگه قصه ای داری؟ اما آخ هر بار جواب میداد نه قمی دارم نه قصه ای حالم خیلی هم خوبه. برادرها دیدن که تنها خواهرشون روز به روز لاغرتر و رنجورتر میشه تصمیم گرفتن سر از این ماجرا در بیارن پس به بحونه شکار از خونه بیرون رفتن و گوشهی پنهون شدن و منتظر موندن آق پامیق مثل روزای گذشته همه کارا را انجام داد و اتاقا رو خوب تمیز کرد و قبل از رسیدن دیو در رو محکم بست و چفتش رو انداخت کمی بعد، دیو دوون دوون از راه رسید و فریاد زد زود باش انگشتت را از سوراخ در بیار بیرون آخ پامیغ انگشتش را از سوراخ در بیرون برد دیو میخواست از خون آخ پامیغ بخوره که هر هفت برادر با شمشیرهای تیزشون به دیو حمله کردن و سر از تنش جدا کردن سر دیو کنده شد و به طرف سرازیری قل خورد در حالی که قل میخورد و میرفت به حرف در و گفت حتما دوباره برمیگردم و همه شما رو میخورم. برادر را برای گرفتن سر دیو دنبالش دویدند ولی هر چقدر سعی کردن نتونستن به سر دیو برسن. سر به سرعت از اونجا دور شد و رفت. چند روز بعد دیو با تعداد زیادی از دیوهای دیگه برگشت. اونا هر هفته برادر رو کشتند، خوردنشون و استخوناشون رو به اطراف پرتاب کردند. آخ پامیغ از ترس زیر پوست آهوی مخفی شده بود دیوا هر چقدر گشتن نتونستن اون رو پیدا کنن بعد از رفتن دیوا آخ پامیق استخونای برادراش رو جمع کرد و گوشه گذاشت و روشون رو پوست آهو کشید مدتی نشست و های های گریه کرد آخ پامیغ مدتی فکر کرد که چیکار بکنه سرانجام سوار اسبی شد و برای یافتن دوایی برای زنده کردن برادرش را افتاد. اون با اسب از این روستا به اون روستا و از این شهر به اون شهر رفت و به هر جا که می رسید سراغ افراد دانا و عاقل را می گرفت و از اونا می پرسید برادرام را دیو کشته. گوشتشون را خورده و تنها استخوناشون باقی مونده. آیا دوایی هست برای چاره این کار؟ هیچکس کس اون رو راهنمایی کنه و دوایی به درد بخور بده. آق پامیق ناامید شد و به گشتن ادامه داد تا به پیرزنی رسید و از اون کمک خواست. پیرزن گفت دخترم برای زنده کردن برادرات دوایی وجود داره ولی به دست آوردنش خیلی مشکله. آخ پامیق گفت مشکل باشه چاره نیست باید تهیه کنم بگو دوایی اون چیه. زن گفت تو کویر خشک و سوزان شطوری به نام آغمایا زندگی میکنه اگه بتونی شیرش رو بگیری برای استخونای برادرات بریزی بلا فاصله زنده میشن این رو هم بدون که آغمایا از آدم ها بدش میاد و به محض دیدنشون اونا رو میخوره اما بچه ای داره که از آدمو خوشش میاد و هرچی از دستش بربیاد برای اونا انجام میده آق پامیق معطل نکرد. مشک ای برداشت و برای یافتن آقمایه افتاد رفت و رفت تا به کویر رسید. از خوش اقبالی اول شطور بچه را پیدا کرد. وقتی شطور بچه آق رو دید خوشحال شد و جست و خیزکنان پیشش اومد. آق سر سر صورت آن رو نوازش کرد و پیشونیش رو بوسید. آخ پامیق به یاد برادراش افتاد و زار زار گریه کرد وقتی شطور بچه علت گریهش رو پرسید آخ پامیق تمام ماجرا رو تعریف کرد و از اون کمک خواست شطور بچه بعد از شنیدن ماجرا غمگین شد و گفت بسیار خوب من به تو کمک میکنم اما اگه مادرم به فهمه هر دو تان رو میخوره باید یه نقشه بکشیم شطور بچه بعد از لحظهی فکر کردن به آق پامیق گفت بهتر زیر موهای شکم من قایم بشی. آق پامی قبول کرد و زیر موهای شکم شطور بچه پنهون شد. شطور بچه آروم آروم پیش مادرش رفت. آق مایا بو کشید و فریاد زد بوی آدمی زاد میاد و شروع کرد به کوبیدن پاش به روی زمین. شطور بچه التماس کرد و گفت مامان آدم اینجا چی کار میکنه من گرسنمه بذار یکم شیر بخورم آغ مایا کمی آروم گرفت شطور بچه رفت زیر شکم مادرش و آغ با میخ شروع کرد به دوشیدن شیر بعد از اینکه مشک پر شد شطور بچه به آرومی خودش را از مادرش جدا کرد و به بهونه چریدن علف دور شد آقمایه به طرز راه رفتن بچه شک کرد و چشم از اون بر نداشت. شطور بچه آروم آروم پیش اسب آقپامیق که پشت تب پیوای ساده بود رفت. وقتی کنار اسب رسیدن آقپامیق خودش را از زیر شکم شطور بچه جدا کرد و به طرف اسبش دوید. آقمایه وقتی که فهمید چه کلکی خورده به طرف آقپامیق حمله کرد. ولی آق پامیق سری خودش رو پشت اسب انداخت و از اونجا دور شد. آقمایا که دید نمیتونه به اون برسه پیش بچهش برگشت و اون رو نفرین کرد و گفت الاهی که به سنگ سیاه تبدیل بشی. شطور بچه تو همون لحظه به سنگ سیاه تبدیل شد. آقمایا که دید بچهش به سنگ تبدیل شده از این کارش خیلی ناراحت و پشیمون شد. پس از اون هر وقت سینه هاش از شیر پر میشد دیگه کسی نبود که شیرش رو بخوره و زیادی شیر آقمایا رو آزار میداد آقمایا بعد از کلی درد کشیدن تو آسمون ها به پرواز درآمد مدت زیادی پرواز کرد قطرات شیرش توی آسمون پخش شد و تبدیل به ستاره شدند آقپامیغ رفت و رفت تا به غارشون رسید فوری سراغ استخونای برادرش رفت استخونا دوباره پخش و پلا شده بودن اونا رو یکی یکی جمع کرد و کنار هم چید. ولی هر چقدر گشت یکی از استخونای ستون فقرات یکی از برادرش رو پیدا نکرد اون شیر آغمایه رو روی استخونا پاشید و روی اونا رو با نمد سیاه پوشون. بعد از کمی برادراش آخ و واخ کنان از زیر نمد بیرون اومدن یکی از اونا گفت پاشید چقدر زیاد خوابیدیم برادرها خمیاز کشان یکی یکی بلند شدن و پیش آخ میغ اومدن آخ میغ از اینکه دید برادراش زنده و سرحالند خیلی خوشحال شد ولی وقتی دید یکی از برادراش به دلیل نداشتن یکی از استخونای ستون فقراتش گوش پش شده خیلی ناراحت و غمگین شد برادرها بار دیگه زندگی عادی خودشون رو شروع کردند. اونا به شکار می و آخ پامیق هم کارای خونه رو انجام میداد. داد. ها و سال ها گذشت و آخ پامیق برادراش رو یکی یکی داماد کرد. از اونجا که برادرای آخ اون رو خیلی دوست داشتن زنای برادراش به اون حسودی می کردن. یه روز زن برادر بزرگش زنای دیگر رو جمع کرد و گفت بیایید کاری بکنیم و آخ رو از چشم شوهرامون بندازیم. اون یکی گفت چه کار باید بکنیم؟ دیگری گفت اگه بفهمن برامون بد میشه. زن برادر بزرگ گفت من فکری دارم. بقیه پرسیدن چه فکری؟ زن برادر بزرگ گفت بیایید تو گلو و گوش آخ پامیق سر داغ بریزیم. امه راضی شدن اما زن برادر گوش پشت با اعتراض گفت این کار درستی نیست من که دلم نمیاد این کارو بکنم بقیه اون رو تهدید کردن و گفتن ما این کارو میکنیم اگرم به کسی بگی همون بلا رو سر تو هم میاریم زن برادر گوش پشت از ترس نتونست با اونا مخالفت بکنه اما از ته دل راضی به این کار نبود زن ها آخپام میغ رو گرفتن و به زور تو گلو و گوشش سر به ریختند. ریختن. پا میغ هم کر شد و هم لال. زن برادر گوش پشت تو کنار ایستاد و از ترس اونا هیچی نگفت. از اون به بعد آخپام میغ هر روز لاغر و لاغر تر شد. هرچقدر برادرش برادراش چی شده اون چیزی نمی گفت. سرانجام یه روز زن برادر بزرگ آخ پامیق به شوهرش گفت من میدونم چی شده. شوهرش گفت چی شده به ما هم بگو. زن گفت وقت عروسی آخ پامیق شده اون نمیتونه به شما بگه. وقتی برادرا این حرف رو شنیدن گفتن هر کس رو دوست داشته باشه میتونه تونه باش کنه ما حرفی نداریم. زن برادر کچکتر گفت اون رو سوار شطور کنید بذری شطور خودش بره و آاقپامیق با هر کی که دوست داشت ازدواج کنه. برادرها این پیشنهاد رو پسندیدند و دست به کار بر پشت شطوری کجاه زیبا گذاشتن و آخپامیغ رو توی اون نشوندند و راهی کردند. شطور رفت و رفت و رفت تا به شکارگاه زیبایی رسید. آامیق، غرق تماشای گلا و گیاها و حیوانای زیبا بود. اون روز پسر پادشاه همراه پسر وزیر برای شکار به شکارگاه اومده بودند. اونا به دنبال شکار با دقت داشتن اطراف را نگاه می که ناگهان چشمشون به یه سیاهی افتاد. منتظر موندند سیاهی کم کم نزدیک و نزدیکتر شد. سرانجام دیدن اون سیاهی شطوری زیبا با کجاوهی زیبا که به میل خودش داره به هر طرفی میره. پسر پادشاه گفت بیا با هم شرطی ببندیم. پسر وزیر گفت چه شرطی؟ پسر پادشاه گفت هرچی داخل کجاوه باشه مال من بقیش مال تو. پسر وزیر گفت باشه دست کم یک کجاوه زیبا به من میرسه. اونا با اسباشون به سوی شطور رفتن وقتی رسیدن، با عجله دریچه کجاور رو باز کردن و دیدن دختر زیبا مثل ماه توی اون نشسته. پسر پادشاه با تعجب گفت آدمیزادی، جنی، پری؟ پسر وزیر گفت نکنه لال باشه. پسر پادشاه گفت هرچی از از شانس منه. بعد پسر پادشاه، آخپامیق رو به قصرشون برد و اون رو به همسری خودش درآورد. یک سال از ازدواجشون گذشت. آخپامیق پسر قشنگی به دنیا آورد. پسر کم کم بزرگ شد و به پنج سالگی رسید. آخپامیق هنوز هم لب از لب باز نکرده بود. پسر پادشاه از لال بودن آخپامیق خیلی ناراحت بود. یه روز تصمیم گرفت زن ای بگیره. پس برای پیدا کردن زن مناسبی را افتاد آق پامیغ مشغول پختن نون شد ولی دستش به کار نمیرفت و کنار تنور نشسته بود و فکر میکرد پسر آق پامیغ خسته و گرسنه از بازی اومد و به مادرش گفت مادر گروس نمه نون بده ولی آق پامیغ هنوز نون نپخته بود پسر دوباره گفت مادر نون میخوام ولی آق پامیغ اعتنا نکرد پسر ناراحت شد و با دست پس گردن مادرش زد. بر اثر ضربه دست پسر، سربی که تو گلوی آقاقومیق گیر کرده بود بیرون افتاد. آقاقومیق از خوشحالی فریادی زد و نفس عمیقی کشید و گفت: پسرم، یکی هم تو گوشم بزن. پسر با ناباوری به مادرش نگاه کرد و یه سیلی محکم به گوش راست اون زد. سربی که توی گوش راست آق میغ گیر کرده بود بیرون پرید. آق پامیر باز گفت پسرم دستت درد نکنه به گوش دیگه من بزن. پسر به گوش چپ اون هم زد. سرب از اون گوش زن هم بیرون پرید. آخپام میغ از اینکه بار دیگه میتونست حرف بزنه و بشنوه خیلی خوشحال شد. و به پسرش که باعث این کار شده بود آفرین گفت. پسر پادشاه همراه زنی به خونه اومد. آخ پامیق مشغول جوشوندن چکلیق بود. شعله آتیش اونقدر زیاد بود که چکلیق به جوش اومد و از دیک سرریز شد. زن تازه وارد که هنوز پاش به زمین نرسیده بود فریاد زد ای زن مسیا یا حیرون نمی بینید دیک داره سرریز میشه؟" شه؟ آخ تو جواب این حرف نیشدار گفت هنوز از را نرسیده زبون درازی میکنی؟ تو به خودت نگاه کن که چشمات مثل آتیش میسوزه و ابراد از حسودی مثل کمونی کشیده شده. پسر پادشاه که دید آخ پامیغ زبون باز کرده خیلی خوشحال شد. زن دومش رو بدون اینکه از از پیاده کنه به شهر خودش برگردوند و امر کرد تو همه شهر جار بزنن که همسر پادشاه زبون باز کرده. مردم از این خبر شاد شدند و این خبر خوشحال کننده در سراسر کشور پخش شد روزا از پی هم میگذشت پسر آقپامیق هر روز بزرگ و بزرگتر میشد آقپامیق برای پسرش قاپی از تلا ساخت و به پسرش نیز شعری یاد داد که موقع بازی بخونه یه روز هفت برادر دور هم جمع شده بودند که بایرام کچیکترین برادر آخبامیق به دیگران گفت برادرا ما خواهرمون رو که اون همه در حق ما خوبی کرده بود سوار شطور کردیم و به امون خدا رهاش کردیم توی بیابون امسال هفتمین سالیه که از پیشمون رفته زندست یا مرده کسی نمیدونه بهتر خبری ازش بگیریم بیاین دنبالش بگردیم شاید پیداش کنیم برادرا حرف اون رو قبول کردن و هر کدوم برای یافتن آخ به طرف یه شهری رفتند. برادر گوش پشت هم رفت و تا به شهری رسید. تو گوشه ای نشست. بچه کوچیک کچیک مشغول قاب بازی بودند. تو دست یکی از پسرا قابی از طلا بود. اون هر بار که قاپش رو به زمین مینداخت شعری میخوند. برادر گوش پشت آخ به پسر نزدیک شد و گفت پسر جون یه بار دیگه شعرت رو بخون پسر یه بار دیگه شعر رو خون وقتی پسر شعرش تموم شد برادر گوش پشت فهمید این پسر خواهرزادهشه و هم هنوز زنده است رو به پسر کرد و گفت پسر جون خونتون رو به من نشون میدی؟ پسر قبول کرد و اون به همراه پسر به خونه رفت آخ پامیق به محض این که برادرش رو دید اون رو شناخت همدیگر را آغوش گرفتن و مدتی از درد جدایی گریه کردند بعد از اینکه آروم شدند آق پامیغ تمام ماجراهایی را که به سرش اومده بود رو برای برادرش تعریف کرد برادر گوش پشت چند روز پیش اونا موند و تصمیم گرفت به خونه برگرده آخ پامیغ تا کیسه دوخت و از مردم شهر خواست براش اغرب بگیرند آخ شش تا کیسه را پر از اغرب کرد و یک کیسه هم پر از نخود و کشمش هر هفت کیسه رو به برادرش داد و سفارش کرد که شیش کیسه را به زن برادر بزرگتر بده و کیسه هفتم را به زن خودش وقتی بایران به خونه رسید به هر کدوم از زنها یک کیسه داد و گفت اینا رو آخ پامیخ براتون سوقاتی فرستاده. زن برادرها فوری کیسه ها رو کردند کردن و دستشون را توی اون فرو کردند. اغلبا به دستشون نیش زدند، زنها از درد دادشون به هوا رفت. زن گوش پشت هم کیسهش رو باز کرد و دید که توی اون پر از نخود کشمش کشمشه و بسیار خوشحال شد. برادر گوش پشت پس از تقسیم کیسه ها سراغ برادراش رفت و گفت بیاین من آخ پامیخ رو پیدا کردم. پسر پادشاه اون رو به همسری گرفته. بعد تمام ماجراهایی را که بر سر آاق پامیق اومده بود برای اونا تعریف کرد. شش تا برادر بزرگتر با شنیدن سرگذشت آپامیق بسیار ناراحت شدند و به هم گفتند: خواهرمون آخپامیغ این همه به ما خوبی و خدمت کرده بود. اگه زنامون این بلا رو بر سرش آورده باشن، سزاشون به غیر مرگ نیست. هر کدام از اونا زناشون رو پشت یه محکم بستن و توی بیابون رها کردند. سرانجام آخ پامیق برادراش رو پیدا کرد و برای اونا ششتا زن خوب گرفت و کنار همدیگه به خوشی و خوبی زندگی کردند.